بسم الله الرحمن الرحيم راسدين ب بيت بيستيوكم الكتاب واستلهي ديگر وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقلوب قسماني تلا إن ما رو بشه ما يفصل حساب كده ومشي ما يجازري حسابش كده وما يخالف ما موصوله ديون موقع وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ فالشاذون مش شاذ مش شي خالص وان تشك مخالفهت فيه الملا درو الحديث بايه ملا بايه گروه فشاذ شاذ هست پس در روایت شاز راوی سقه هست منتها روایتش مخالف هست با اونی که از خودش سقتر هست یا تعدادشون بیشتر هست ملع هست یه گروه هست شاز رو تعریف کرد در این به صادقی. پس روایت مقبول مخالفت کند با کسی که اولاتر از خودش باشد یا تعدادشون بیشتر باشد این شد از شاز حدیث میگن این حدیث شازه یعنی این یعنی خاطر مخالفتش با بهتر و تعدادی بیشتر از خودش شاز هست وگرنه به تنهایی شد مورد قبول باشه والمقلوب المقلوب قسمان تلا مقلوب قسمانی تلا دیگه جمله خیلی ساده است مبتدا و خبر وال مقلوب و قسمانی مبتدا و خبر تلا یعنی بعد از چیزی در آمدن بعد از چیزی اومدن در قرآن این لفظ اصطلاح کلمه زیاد اومده است این بعد از چیزی اومدن ثم الذين يَلُونَهُم خب و مقلوب بردونه هست که طلا تلا اومده است بعد از شاز اون دو رو در بیت 22 توضیح میده نوع مقلوب رو که به قونی آورده است این شاز در چار چیز میتونه پیش بیاد نقص در سند افراد سقتر از خودش به گونه اینو آورده و این سند رو به گونه دیگر یا زیادت در سند یا نقص در متن. یا زیادت درمت پس این به چهار شکل میتونه شاز پیش بیاد و مخالفت با سقتر از خود یا جمع بیشتر از خود پیش بیاد بیست و دومین بیت که اقسام مقلوبو داره میگه در واقع اینا این جمله بدل هستند از قسمانی ابدال و راون ما به راون قسمو بدل کردن راوی با راوی دیگر یک قسم هست و قلب و اسناد لی متن قسم و قلب کردن اسناد به متنی دیگر قسم دیگر هست یه سند راوی به متن دیگه بدی این هم قسم دومش دو هست خب اینا ها هر دوتاشون مقلوب در سند بودند شما بیایید اسم راوی با اسم پدرش مثلا اواز کنید ماننده این که بجایین که بگوید کعب ابن مره بگوید بگوید مره ابن کعب یا قرار دادن سند هدیثی به متن هدیثی دیگر حالا چی از راه ام چه از راه صح و مقلوب در متن هم داریم. انه الفاظ و جاشونو با هم عوض کند قلبشون کند ماننده این حدیث رجل تصدق بصدقتن فاخفاها حتی لا تعلم یمینه ما تنفق و شماله که در مسلم اومده است مردی که صدقه را به گونهی دهد که به پنهانی دهد که راستش نداند که چپش چه بخشیده است در حالی که اصل چونین هست رجل تصدق به صدقتین فا حتی لا تعلمه شماله ما تنفق و يمينوه. چپ نداند که راست چه بخشیده است این قلب در متن بود والفرد ما قَيَّدْتَهُ بثقته او جمعین او قصر على روایه فردو مطرح کرده است قبل از این که توضیح دهیم بیترو این نقطه رو باید افزود که فرد بردونو است فرد مطلق و فرد نسبی و مقیت فرد مطلقون است که یک صحابه اونو روایت کرده باشد ماننده این نمل اعمالو به نیات که اینو راویش فقط عمر خطاب رضی الله عنهو می باشد یا به عبارت دیگر فرض مطلق اون است که در طبقی از طبقات راوی یک نفر باشد الکاری ده داریم به بحث های دیگهی که روش انجام میگیره. و فرد نسبی نه فرد نسبی یا فرد مقید ممکن است مثلا یه حدیث رو سه راوی سه صحابی روایت کرده باش ابو هرره، ابن عمر و مثلا انس مالک ولی از ابن عمر دو نفر روایت کرده باشد یا بیشتر از انس ابن مالک هم همچون ولی از ابو هره با وجود این کشاگرده زیادی دارد یک نفر اونو روایت کرده باشد اینو میش میگن به نسبت سند ابو هره تفرد درش پیش اومده لذا اینو میگن فرد نسبی یا مثلا یک شهر فقط تفرد داشته باشند در روایت اون حدیث مثلا شامی ها بصری ها یا کوفی ها بسری ها از یک نفر حدیث روایت کرده باشند یا یعنی اینکه یک نفر از بسری ها اونو روایت کرده باشد و الفردو ما قیدتهو به ثقتی او جمعین او قصرین على روایه والفرد مبتدا ما خبرش هست قیدتهو به ثقتن که خب فعل فاعل مفعول یارو مجرور متعلق به قیدتهو میگه سرد منظورش فرد نسبیه اونی که تو براش قید میاری اونی هست که براش قید میاری به ثقتن به ثقه یعنی چی؟ مانند این که گفته میشه لم یروهی ثقتن الا فلان این حدیث و ثقهی رواد نکرده جز فلان پس این شد فرد نسبی از این زاویه او جمع یا یک جمع اون رواد کرده ولی باز هم فرد نسبیه چطور مثلا یک شهر مشخصی تفرد به نسبت یک شخص مشخص مثلا یه حدیث رو فقط اهل حجاز رواد کنن یا اهل یمن یا اهل شهری خاص. و است حدیث اصلا مشهور ازیز باش اینو میگن فرد یس بی پس و الفرد ما قیدته فرد فردونید که مقیده شبکونی قید بیاری براش بثقه یعنی رواتش کرده رو نکرده جو سقه یا جمع ماننده اهل شهری او قصر علی روایه یا قصر یعنی اقتصار هست یعنی اکتفا یا اکتفا کردن بر روایت راوی معین اقتصار کردن بر روایت راوی معین مانند این که مثلا یک راوی از یک راوی مشخصی فقط روایت کرده باشد و اون راوی هم از راوی مشخص دیگر یا مثلا امام مالک از امام زهری فقط در حالی که حدیث مشهور هم ممکن است باشد یا عزیز باشد ولی در این روایت تفرّت شده امام مالک از امام زوهری دیگه کسی دیگه از امام روایتش نکرده و ما به علت غموض او خفاء معلل عندهم قد عرفه و آنچه که علت مخفی داشته باشد معللون معلل هست این هم خبر جمله ما هست ما مبتدار هست به علت غمودن او خفا اینا همشون به علت که و مجرور غمودن صفت هست او که هم حرف و خفا معتوف خب و ما به علت غمودن او خفا معللون وانچه که درش علت غموز غامز دشوار پیچیده مخفی درش باشه معلل مؤلل مولل هست اندهم قد عرفه نزد آنها یعنی نزد اهل علم محدثین قد عرفه علف علف اطلاق هست یعنی معللون اندهم قد عرفه شنوخته شده است که هو به معلل بر می‌گردد پس حدیث معلول یا معلل البته رو معلول بحث هست اون حدیثی هست که بعد از تفتیش و بررسی علتهای درش باشد که اینو جهابزهت المحدثین از عهدش به خوبی برمی‌آید بریم بیت بعدی و ذاختلافی سندن او مسترب عند الفنی و اونی که اختلاف هست در سند یا متنش مستربن مسترب هست زو مبتدا هست. اختلاف سندن آمتننن. زو اختلاف که خوب مضافون ایله هست. سندن همچنین مستربن خبر هست. و نختلافی سندن آمتننن مستربن، مسترب هست. این ده اهل الفن نزد اهل الفند. اهل و اینجا به خاطر ضرورت شعری، به شکل تصوير بکار آورده است. اهل که تصويرش میشه اهل. میگه زو یعنی دارای یعنی صاحب حدیثی که دارای اختلاف سند یا متن هست مضطرب هست نزد اهل فن نزد اهل این رشته پس حدیثی که در سند یا متنش اختلاف باشد نزد اهل این فن بهش حدیث مضطرب میگن البته باید دانست چه زمان این حدیثو بهش مضطرب میگند به شرطی که بین این حدیث و اون حدیثی که با باش اختلاف داره امکان جمع یا ترجیح بین این روایت نباشد اگر امکان جمع یا امکان ترجیح بین روایت بود دیگه نمیگن این حدیث مسترب هست پس اگر در متن یا سند اختلافی پیش اومده در حدیث اختلافی پیش اومد و نشد بین اون دو تا خلاف جمع کرد و نشد یکی رو بر دیگری ترجیح داد اون موقع بهش میگن مسترب در غیر اون صورت مسترب نامیده نمیشود اگر جمع ممکن بود یا ترجیح خب ترجیح نگاه میکنن که کدومی که اوسقتر هست تعداد راویان بیشتر است یا کدوم یکی تاریخشون مشخص است که ناسخ و منسوخی مشخص شود بیت 26 شم کتاب والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض الفاظ الروات اتصلت والمدرجات مبتداها في الحديث جار مجرور ما أتت ما خبرها أتت كن فيلمازي مؤنس نتانشان يتانيسها فائلش برمجردت مستطرها بما قبلش میگه مدرجونی هست که در حدیث میاد من بعض الفاظ از بعضی از الفاظ روات اتصالت و به حدیث میچسبه پس مدرج اونی هست که میاد جزو حدیث میشه حالا چه در متن چه در سند ادراج اصلا خودش در لغت به معنی داخل کرده و مدرج بر دو نوع است مدرج اسناد و مدرج متن اسبابی داشته است مثلا گاهی موقع راوی یک لغت غریبی رو شرح داده مثلا التحنف گفته التعبد ای التعبد و هو التعبد بعدن راوی ها دیگه اونو به عنوان حدیث روایت کردن و این شکل مدرج شده است مدرج در متن میتونه در اول متن بیاد میتونه در وسط و میتونه در آخر بیاد. حدیثی مثال میآورند اسبق الوضوء ویل من النار. رو به خوبی بگیرید. وای بر عقبه‌ای پایی که به خوبی نشسته باشد، جزااش جهنم است. این تأکیدی است برای اینکه جاهایی رو که معمولاً عقب میافتند از شستن، انسان مؤاذبت بکنه و خوبی رو کامل بکنه. میگن اسبق الوضوء مدرج است جزء حدیث نیست حدیث این است ویل للعقاب من النار اصل به قول وضوء کلام راوی ابوهریره است میتونه در وسط و میتونه در آخر هم تونی ادراج رخ بدهد پس موقع در مصطلحات میگن این مدرجه یعنی جزء حدیث نیست این کلام راوی یعنی افزوده شده داخل کرده شده و در سند هم میتونه سندی تغییر توش بیاد و مدرج بشه یا مثلا سندی رو بدن به متنی دیگر یا دو متن رو با هم قاطی کنن و یک سند یکی از اون دوتا متن رو براش بیاورند. یا یک لفظ اضافی در حدیث بیاد و در حدیث شبیه خودش قاتی بشه و با همون سند مثلا خانده بشه خلاصه بحث ادراج در متنو سند همین هست که چه در سند چه در متن چیزی که جزو سند و نیست اضافه شود بیت 27 بی کتاب و ما روا کل قرین اناخه مدب بجون فعرف و حقا و انتخه و ان چرا که روایت کند هر هم نشین و هم سن و و هم طبقه ای هم دوره‌ای از برادرش از برادر مسلمان راوی مدبج به اون مدبج گفته میشه ما مبتدا هست و خبرش فاعرف حقا بخبولو بشناس حقا منصوب به خاطر مفعول مطلق بودن و تخه و افتخار بکن به خاطر شناختت انتخا ينتخی این هم انتخی فعل امر هست مفرد مذکر حاضر و حرف الله به خاطر این حذف شده است. چون بنای فعل امر در ناقص بر حف حرف الله می باشد. پس هر چرا که روایت کند هر قرینی از برادرش از همس مصالی و هم قرینش مدبج هست. یعنی این از اون روایت کرده باشد و اون از این و ما را و کل قرینن ان اخیه یعنی دو طرفه باشد این روایت چون اگر هم سن سال یکی از فقط یکی از هم سن سالش روایت کرده باشد و اون در طرف مقابل روایت نکرده باشد میخوان روایت اقران یعنی روایتی که هم سن ها یا اونایی که مساوی در شیوخ و طبقه هستند از همدیگر داشته باشند مانند ابو و مثلا بیبی آیشه همسند و سالند حالا اگر هر دوتا از همدیگر داشته باشند بش میگن مدبت و اگر یکی از دیگری داشته باشد بش میگن اقران پس بر این اساس مدبد روایت اقران حساب میشه ولی هر اقرانی روایت مدبج گفته نمیشه امام در داری مورد کتاب المدبج رو دارند بیستو هشت لفظا لفظن و خطا متفقو و زدوهو فی ما اصطلاح دیگه رو که به این بیت توضیح داده است المفتر المتفق والمفترق هست خودش توضیح داده متفق اللفظا و خطا متفق اونی که لفظا و خطا متفق باشه بهش گفته میشه متفق خب متفقون ابتدا مبتدا لفظا منسوب به خاطر اینکه ك... اصل جمله چنین هست متفق في اللفظي والخط متفق چون خافز یا جار کشیده شده وجود ندارد منسوب شده پس لفظا میگن منصوب به خفض به نزع الخافض <تصفيق> متفق لفظا و خطا متفق این هم خبرش هست اونی که لفظا و خطا متفق باشه بهش متفق گفته میشه و ضده فيما ذکرنا المفترق و زدش ترونش که ما ذکر کردیم بهش مفترق گفته میشه زدوه خبر مقدم المفترق در آخر اومده مبدای مؤخر هست پس المتفق و المفترق اینا, است... اینا دو کلمه با هم یک اصطلاح هند بشون میگن المتفق و المفترق یعنی اسم راوی و اسم پدرش یا بالاتر از اون یکی هست منطقه شخصیات و مسمیات با هم فرق داره ماننده عبدالله ابن زید ما دو تصحابی داریم به نام عبدالله ابن زید پس اینو میگن المتفق و المفترق یعنی اسمها یکیست ولی شخصیت با هم متفاوت است مسمى با هم متفاوت است یا در میان راویان ما دوتا تا عمر ابن خطاب داریم. و الی اصطلاح بعدی مختلف متفق الخط فقط و ضده مختلف فخصل غلط مختلف و المختلف اینا هم یک اصطلاح حدیث هست که اینو باید عموخت چرا بهش میگن مختلف و مختلف مختلفون متفق الخط فقط میگه مختلف هست که خطش فقط با هم یکی هست یعنی در نوشتار با هم شبیه همن مثل بشیر و بشیر فقط در خط اما در نطق نه و ضده مختلفون ضد مختلف مختلف هست و ضده مختلف یک جمله زده ضدو میشه مبتدا مختلفون میشه خبرش فخش الغلط از غلط بترس این اینا رو یاد بگیرو تا در غلط نیفتی تا در اشتباه نیفتی خب پس المعتلف و المختلف که اصطلاحی در حدیث در مصطلح این از که اسمها خطنیکی باشند در نوشتار ولی در نطق با هم اختلاف داشته باشند حالا یا به سبب حرکت مانند رو بوشه یا به سبب حرف مانند بشار و یسار این میگن مختلف و مختلف و بیت سیوم والمنکر الفرد بهی راوین غدا میگه و حدیث منکر الفرد بهی راوین اونی از که راوی تفرد داشته باشه یک راوی اون روایت کرده باشه حدیثی که یک راوی تفرد داشته باشه غدا تعدیلو لا یحمل التفردا اون یک نفر تعدیل شده ولی این تعدیلیش حالا چه در ضبط چه در ادالت در اون سطحی نیست که به شکل تفرد مورد قبول باشه و المنکر الفردو منکر مبتدا الفردو خبرش بهی رابط الفرد بهی راون راول فائلله فرد هستون مسر هست غدا تعبدیل هو لا حمل تفر غدا قبلا گفتیم که از اخوات ساره هست معنی گردیدن غدا تععدیله و لا حمل تفر غدا از اخوات ساره تععدیل اسمش هست معرفوب با زنبه هو مزافون اله لا حمل تفر یک جمله فعلی هست لا حمل فعل با فائل مستترش که به راوی بر میگرده التفرد مفعول بهی مفعول. علف هم اطلاق هست این جمله لا یحمل التفرد خبر غدا هست محلن مرفوع پس حدیث منکر حدیثی است که راوی تفرد دارد این راوی عادل هست ضبط هم داره منتها به اون سطح نرسیده که تفردش مورد قبول باشه این یک تعریفی از منکر هست که به قوری آورده است تعریفی دیگر رو از منکر می حدیثی است که ضعیف در اون با اولاتر از خودش مخالفت داشته داشت. قبلا ما شازو خوندیم شازو منکر گویی که با هم مناسبت هایی در تعریف دارند شازون بود که راوی سقه بود ولی با سقه تر از خودش مخالفت داشت در منکر بر اساس تعریف دومی کلبت تو این کتاب نیومده. ابن حجر رحمه الله او اون آورده اونی هست که راوی ضعیف با راوی سقه مخالفت داشته باشه این تعریف دومی هست تعریف اولش که بیقونی آورده بود اون تعریف بود بیت سیو یو کتاب متروکه ما واحدون به انفرت و اجمعو لضعفه فهو کرد میگه ما ترکوهو ما واحدهن به این فرد. متروکوهو ما. متروک مبتدا هو مزافنیله ما خبرش است. واحدون به فرد. واحد بر مبتدا انفراده. ماضی فایلش مستتر فیل با فایلش میشه خبره واحد که مبتدا هست. متروکوهو ما, ما به این فرد. متروک حدیث متروکونیاست که واحد بهش باشه انفراد داشته باشه و اجمعه لضعف. مصیبت بعدی این است که تمام محدثین بر اون اجماع دارند بر ضعفش اجماع وجود داره فهو کرد پس اون این کاف اضافی هست به خاطر ضرورت شعری فهو ردون در واقع پس اون مردود است هو مبتدا ردون هم خبر پس حدیث متروک اونی هست که راوی اون رو روایت میکنه که بر ضعفش اجماع هست. این هم از متروک والکذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع حدیثی موضوع رو مطرح کرد این روزها باید خیلی مواظب باش در فضای حقیقی و مجازی متاسفانه احادیث موضوع زیادی می آید البته شاید شخصی گیر دهد ده موقعی که این موضوع هست چرا دیگه میگیم حدیث بخاطرین که به اینوان حدیث میگردد بشمیدند حدیث موضوع وگرانه موضوع در واقع حدیث نیست ولی از اون جایی که نسبت به پیامبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم داده به اینوان حدیث موضوع مشهور هست موضوع یعنی ساختگی و از شده و الکذبو حدیث مکذوب المختلق و المصنوع که درست کرده شده است ساخته شده است الان نبی بر پیامبر خدا صلی اللہ دروغی که ساخته شده است و نسبت داده دا شده است بر پیغمبر فذالک الموضوع فذالک فایر رابطه است ذا دا مبتده است کاف کاف خطابه است الموضوع خبرش است الكذب که در ابتدا اومده بود مبتدا بود این فذالک الموضوع که یک جمله از خودش خبر همون قبلی هست پس حدیث موضوع حدیث دروغین ساخته شده است که به پیانبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نسبت داده می شود و پیانبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تهدیدی بسیار بزرگ برای افرادی که دستی دارند در حدیث دروغل چه سازنده اند چه اونو عمدی نقل می کنند من کذب علی متعمدا فلیتبوه مقعده من النار اونی که به عمد من دروغ میبندد جایگاهش را در آتش بداند و ایدی بسیار شدید پس لذا تا از صحت و سقم احادیث خبری نداریم سعی کنیم نقل نکنیم و اگر و اگر برادر مسلمانی ما را متوجه موضوع بودن حدیثی کرد نه آن که بر آشفته نشویم بلکه دعای خیر کنیم نجاتمان داده است حدیث موضوع راه شناختش راه مختلفی داره یکی اینکه در راوی کذاب و وزایی داشته باشه مصادمت با قرآن داشته باشه، تناقض با حدیث صحیحی باشه یا اصلا چیزی باشه که اصلا با عقل مرده به شکل سریح مورد قبول عقل نباشد چیزایی که دروغای شاخ و دمدار و راه های که محدثین در کتبشون اونا رو آوردن البته اسبابی دارد ساخت این حدیث دروغی گاهی به خاطر مذاهب سیاسی طرف میاد این حدیث رو درست میکنه گاهی موقع به خاطر اغراض دنیایی گاهی موقع به خاطر امتحان راویی که البته اون باید تو مجلس دیگه فوراً بگوید در این مورد کتابه ارزشمندی نوشته شده است الموضوعات ابن جوزی که دیگه مشهور هست و کتب دیگه که امام سیوتی و دیگران دارند و قد اتت تا اینجا کار بحث اصطلاحات تموم میشه و و قد اتت کل جوهر المکنونی، و آمده است این منظومه مانند یک در پوشیده و محفوظی سمیتوها المنظومه البیقونی نامگذاری کردم آن را منظومه بیقونی سمتوها فائل فایل مفهومیه اول منظومه مفهومیه توهم الباکونی هم مضافنله سمتوها منظومه الباکونی نامگذاری جزایی کردم را منظومه بیقونی فوق سلاسین با چه با فراتر چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه ثم بخير ابیاتو هم مبتدای معاخر هست فوقه که ظرف بود خبر مقدم بود ثم بخیر این ختمت سپس بخیر خاتمه یافت بله ابتدا اومد حدیث صحیح و تعریف کرد تا به هر انسانی بگوید که در این رابطه سر و کار دارد حدیث همه یک حکم ندارد حدیث یا صحیح هست یا حسن و بعد از اون دیگه ضعیف حدیث صحیح خودش بر بود که این تقسیم بندی رو نه آورده بود صحیح لذاتی و صحیح لغیرهی و حدیث بعدی حسن خودش بر دونو بود صحیح حسن لذاتی و حسن لغیرهی دیگه پایینتر از حسن لغیرهی ضعیف بیاد که مرد قبول نیست و نمیشه حد در احکامت ازش احتجاج و استدلال کرد از لحاظ تعداد راویان هم طبقه بندی کرده بود یا متواتر بود یا آهات متعاطر اونی بود که یه جمعی اونو روایت کرده باشند که امکان این که بیاند دروغ ببندند وجود ندارد مثلا یه مثال روزی بزنیم قبل از این که و موالی می بود به ما گفته بودن چینی وجود دارد ولی از بس که افراد زیادی این چینو گفته بودن وجود دارد که احتمال این که چینی وجود ندارد، نداشته باشد و این خبر دروغ باشد نبود تعدادی که این خبر رو نقل می کردن به گورهی بودند که این احتمال که بیان با هم دیگه سازش کنند که تا ما رو فریب بدن وجود نداشت لزم اکثری سری رو داریم که تعداد راویان اونو میان روایت کنند که احتمال سازش بر دروغ وجود ندارد لزم بهش میگن حدیث متواتر احاد خود خودش تقسیماتی داشت تعریف کرد مشهور و عزیز و غریب مشهور سه نفر یا بیش از سه نفر اون روایت کرده باشن که به تعداد متواتر نرسیده باشن علاقه منظور این نبود که در تمام طبقات سه نفر باشن یا در عزیز تمام طبقات دو نفر باشن یا در غریب تمام طبقات در طبقی از طبقات از نویسنده تا پیغمبر خدا صلی الله علیه که راوی یک نفر بود اون موقع بشون گفتن غریب حالا که خودش تقسیماتی داشت توضیح داره. یا در طبقی از طبقات رویه ها دو بودن، می بودن بهش میگفتن عزیز مثلا دو صاحب روایت کرده بعد از اون طبقات بعدی دیگه پنجه نفر باشن بیشتر کمتر باشن کاری ندارن بهش میگن دیگه عزیز و تقسیم بندی های دیگه ای که خیلی جالب و مفید برای طلاب و برای اونایی که علاقه به این علم دارند آورده بود امیدوارم الله متعال این عمل رو در میزان حسنات ما بیفساید و مورد قبولش واقع شود و سبب کفاره گناهان واقع شود موفق و پیروز باشید